هشیار باش مفکر باش مدبر باش مبادا فریب ملههایی را بخوری که مانند خر کتابها را به پشت انداختند مبادا فریب ملههایی را بخوری که مشاورین حکام تواغیت مبادا فریب ملاهای را بخوری که زیر چتر تاووت به نام احذاب اسلامی مردم را به گمراهی دعوت می مردم را به مذهب سیکولار دعوت می دهند. مردم را به بهانه‌های های مختلف از جهاد منع می کنند بس فکر کن ای کسی که از این فروش فتوا می گیری بپرسیشان را که آنها مجاهدند یا سیکولار کولار بس عجله کن مبادا به مرگ جاهلیت بمیری، مبادا از این نعمت که خلافت است محروم شوید در میدان های گرم نبرد و کارزار بر علیه همه کفار مرتدین بجنگ و دین الله را در سرزمین الله حاکم کن له الاجاب تميزه يرفع بالخلق سحاب يامر بالمعروف وينهى عن منكر فعل انتواب عن منكر فعل انتواب لحظات خبري سوى خلافه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 السلام علیکم و رحمت الله و برکات و شنوندگانی عزیزی رادیو صدای خلافت به بخشی خبری ما خوش آمدید امید است که صحتمند و سر و حال باشید با همین امیدواری توجه شما را به آخرین تحورات و پیش های دولت اسلامی جلب میدارم نخست از همه سرخطی چند خبر کشته شدن شش اسکر عراقی در شرق رمادی وقوع حمله استشهادی در شهر حدیثه سلی کشته و زخمی شدنی چار دستگر عراقی تا یک انفجار در دیالا سلی شش کرد ملحید در ولایت حلب سلی نفصواری, سنی نفصواری. سنی نفصواری. 23 کشته از محافظان تاسیسات نفتی در لیبیا و از درگیری های شما را با خبر سازیم با ما باشید ص الصار نشید و و این هم مشروعی خبرها تکتیراندازانی دولت اسلامی شش اسکر ایراقی را با استفاده از سلاحی در گفت در اطراف منطقه‌ای البوعبید در شرق رمادی کشتند این نیروها زمانی کشته شدند که به طور جداگانه مورد اصابت گروه های تکفیراندازون در نقاط مختلف قرار گرفتند تکتیراندازانی دولت اسلامی در دسر بزرگی در سالهای متمادی به نیروهای دشمن بوده است سه حمله کننده این غماسی بالای مقررات ارتش عراق در جاده در شهر حدیثه حمله کردند یک از استشادیان پس از درگیری‌های شدید با نیروهای دشمن خود را میان آنها منفجر کرد و دو استشادی دیگر پس از وارد کردن ضربات سنگین بر دشمن دوباره سالم برگشتند یک از استشادیان دولت اسلامی با استفاده از کمربند انفجاری میان تجمع عناصر بسیج مردمی در منطقه سلیمان بیک در شرق تکریت حمله کرد در اثر این انفجار تعدادی کشته و زخمی به صفوف دشمن وارد گردید گزارش شدتی شدت درگیری ها در ویلایات دیالہ حکایت دارد در تازه‌ترین موارد در اثر انفجار یک مانج جاسوسی شده در ناحیه بلدروز در ویلایات مذکور ده تن از نیروهای راقی و بسیج مردمی کشته و 4 تن دیگرشان جراحات سنگین برداشتند در یک خبر دیگر آمده است که مجاهدین دولت اسلامی یک ساحر دو پیشمرگه کرد و یک جاسوس را در روستای السوره در ناحیه قرتیپا در این ویلات ترور کردند یک درگیری شدید میان مجاهدین دولت اسلامی و نیروهای ملحید کردی در رستای الحالولی ولد حلب رخ داد. در اثر این درگیری شمار کشته و زخمی به جا گذاشت. پس توقف این درگیری نیروهای ملحید کردی به هدف کشیدن اجساد کشته شدگان دوباره وارد ساحه شدند. این بار به فضل الله هدف تکتیراندازان دولت اسلامی قرار گرفتند. در اصر گلولباری های تکتیراندازان شش کرد ملحید در شمار صدی الفاروق در رفی حلب کشته شدند. یک حمله بزرگ روافیز عراقی که بر پلی توفاها و منطقه النعیمیه در جنوب فلوجه انجام داده بودند، از سوی مجاهدین دولت اسلامی به ناکامی انجامید. در اصدری درگیری که در این ساحات رخ داد، نیروهای دشمن مجبور به عقب نشینی شدند. همچنان در این درگیری، شش ارادموتر نظامی دشمن از بین رفته است، در همین حال در یک خبری دیگر آمده است که 25 تن از نیروهای عراقی و بسیج مردمی در جنوب فلوجه کشته شدند در همین حال یک خبری دیگر از فلوجه می‌رساند که یک اراده تانک نووی ابرامیس توسط موشک هدایت شونده در منطقه سیجر واقع در شمال شرقی فلوجه منهدم گردیده است نیروهای رافزی در این واخر بار را اندازی یک عملیات ادعا نمودند که بحشهای مهمی فلوجه را تسخیر نمودند اما این ادعایشان دور از حقیقت است و هر روز ستها تن از آنها در این سرزمین کشته می و دهات تانک و نظامی نظامیشان تخریب میگردد گردد الفلوجه تلک المدینه الصامده توفی وجه جيوش رافضت و اسیاده وقفت شامخة على أبواب بغداد وهي تنافح أهل الرفض وتحبط مخططاتهم التي كادوها للمسلمين الله أكبر الله فكلما حاول المرتدون خرق حصونها سارعت إلى التصدي لهم بعزة وثبات لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب انصرنا يا رب اللهم انصرنا يا رب درگیری‌های شدید میان مجاهدین و نیروهای دشمن در لیبیا جریان دارد. تازه‌ترین گزارش‌ها می‌رساند که یک حمله کننده استشادی دولت اسلامی محافظان تأسیسات نفتی لیبیا را در محید شهر بینی جوات نزدیک شهر رأسی لانوف واقع در شرق سرت هدف قرار داد. در اثر این عملیات 23 تن از محافظان نفت مسکور کشته و زخمی شدند. این حمله پس از آن صورت گرفت که پاسدارانی تاسوت نفتی پس از درگیری های شدید توانستند تا بر منطقه بین جهاد مسلط شوند. اما نیروهای دولت اسلامی با استفاده از فرصت از جهتی شرقی با سوی شهر پیشرویهای ای را داشتند. در همین حال یک خبر دیگر از درگیری میان مجاهدین دولت اسلامی و نیروهای فجرلیبی در نزدیک دروازه چهلوم در غرب شهر سرت حکایت دارد. این درگیری پس از آن رخ داد که نیروهای فجر لیبی یک حمله تهاجمی را بالای مقررات دولت اسلامی در منطقه مسکر انجام دادند. تازه تر ها از اولیت انبار می که مجاهدین دولت اسلامی در سلسله پیشرفی در شریحیت بر منطقه مشتل نیست تسلد یافتند. خبر ها که نیروهای آمریکایی در قبال اساکر کردی در عراق و سوریه علیه دولت اسلامی در جنگند. پس از اعلان خلافت اسلامی آمریکا اعلان کرده بود که نیروی زمینی به سوریه نمیفرستد. در همان زمان مجاهدین با آمریکا هوشدار داده بودند که حملات هوایی ائتلاف کفری چیزی را تغییر نخواهد داد و آمریکا مجبور است تو اساقری پیاده خود را وارد جنگ سازد اما حالا دروغ آمریکا آشکار شده و تعدادی از سربازانش را به حیث مشاوران جنگ به سوریه فرستاده است اباکرد کردهای ملحد شانه به شانه مجاهدین دولت اسلامی می جنگند. كانت مصادر قد قالت للجزيرة ان قوة امريكية من نحو خمسين فردا وصلت الى منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي للمشاركة كمستشارين عسكريين الى جانب قوات سورية ديمقراطية في معاركها ضد التنظيم في المنطقة ودر اخير خبر جالب پس زان که نيروهای رافزي اراقي بر یک پایه مخابراتی در فلوجه تسلو دیافتند تلاش میکنند تا پرچم دولت اسلامی را که أنتن نسباس آنتن نسبس پایه در کلیپی ویدیویی که سوی همین راافی ها تصویر برداری شده دیده می شود که یک کاری راافظی بر آنتن بلند می شود و پس از چند لحظه تلاش پرچم را همراهی چوبش به زمین می اندازد اما پرچم توحید خود را دوباره راست می کند و بر زمین نصب می شود و به احتزاز خود ادامه میدهد علينا الصوارم نشيد النباه ودرب القتال طريق الحياه لدينا يبيد دیلا پیکار جو پیکار جنگ است که حق را, را یار جنگ است اگر خواهی سرف و آزادی و عصد... های رادیو صدای خلافت توجه نمایید به یک مطلب ابعاد توضعه استعمارگران به طور مداون تلاش میکنند تا اهداف و آرمانهای مقدس دین اسلام را از اصحان مسلمانان پاک کنند. زیرا این باورها همیشه مهمترین تکیهگاه و محرک مسلمانان برای بازگشت به با اهداف و آرمانهای اصیل اسلام هستند. دشمنان دین اسلام روش ها و تکتیک های مختلف را برای دستیابی به با اهدافشان کار میگیرند، یکی از این مکانیسم ها تخریب و نابدی عقاید دین اسلام است که با ایجاد اتهامات بیمورد ترح شبهات و ضعیف نشان دادن پایه های فکری آن را عملی می کنند آنها چنان با آب تا به تبلیغ این موارد می که در نظر افراد ساده لوح خصوصا قشر جوان و نوجوانان که کمتر از گذشته اطلاع دارند خوشایند جلوان نموده و بر قلب فکر آنان تأثیر بگذارند آنها با طرح پرسش هایی که از فلسفه یونانیان نشعت گرفته است بزر تردید و گمان را در دل جوانان می پاشند و آنها را دچار سردرگمی می کنند. برخی از پرسش های فلسفی آنان در رابطه با موارد چون وجود الله، جهان، فرشتگان، وحی پیامبران، کتاب های آسمانی، قضا و قدر و غیره می باشد همزمان با آن با استفاده از برنامه های دقیق و منظم تلاش می کنند تا جوانان را از اسلام دور کنند استعمارگران موفق شده اند که زمینه های علم و دانش را برای اجرای نقشه هایشان تصرف کنند آنها برای فریب اذهان عمومی افراد را از نجادهای مختلف و بانقاب های مختلف در دستگاهها ها و سیستم های آموزشی و تبلیغاتی منصوب نموده اند تا مراکز مهم تبلیغاتی، تربیتی و برنامهریزی های کلان یک کشور یا یک منطقه را در دست گیرند و به این طریق بتوانند نسل را مطابق اهداف و خواسته هایشان تربیت کنند که منافع آنها را در آن کشور تأمین کنند اگر چنانچی استعمارگران بتوانند از هان این نسل را از عقاید دین اسلام که حقیقتا پایه و اساس شخصیت آنهاست خالی کنند آنگاه هیچ چاره جز قبول ایدئولوژی استعمارگران و نهایتا تقلید و وابستگی کامل به آنها نخواهند داشت به این ترتیب این نسل برای استعمارگران تماکار حکم لقمه آمدهی خواهد داشت و راحتی آن را خواهند بلعید. این نقشه بسیار وسیع و طولانی مدد بوده و از لحاظ دقت و های مکارانه کم نظیر است و متاسفانه امروز امت اسلامی به آن گرفتار شده است. به طور کلی می توان اهداف این نقشه را در سه مورد خلاصه کرد. که از خطرناکترین عوامل ویرانی یک جامعه متمدن و با فرهنگ شمرده می شوند. این موارد عبارتند از خالی کردن تدریجی افکار نسل جوان کشورهای اسلامی که بر اساس اقاید مقدس دین اسلام ترگیت شده اند و تزریق افکار اقاید و باورهای غربی به این نسل. این روش را شستشوی مغزی می گویند. دوم، پرکردن خلای فکر نسل جوان با یک سر افکار فریبنده و گمراه کننده این کار خدمت بسیار بزرگی به استعمارگران نموده و آنها را زودتر به اهدافشان خواهد رساند و فرصت بیشتری برای تسخیر فکری و نظامی بدشمنان اسلام خواهد داد سوم های نظامی که استعمارگران برای رسیدن به اهدافشان تشکیل دادند. تأثیر مهمی بر روند کار آنها داشتند و کمک زیاد به فراریختن پایه های اساسی افکار ملت مورد تهاجم واقع شده می نمایند سپاس گذارست هستیم از توجه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نهادی خوف ترابدار جنگ است بینازم مردمی مرد و می جنگ جویان را کشام و صبحشان هر بار جنگ است رادیو صدای خلافت ترجمه دریس خنرانی جدید شیخ ابو محمد عدنانی حفظه الله را تقدیم می نماید با عنوان تا زنده شود کسی که با دلیل واضح زنده می شود عند من كل الهدى ولو علمنا أن سلفا صالحا سلم شبرا للكفار بحجة حاضنة او الحفاظ على المباني من الدمار وعجرم يدان استمك سلف صالح يق وجب را بدليل بايعه مردومي ياهف نمودان ساختمانها عن نابودي واهف كردن خونها يحرم أصلاحه مورده الداعي به کافران تسلیم کرده اند ما هم همان کار را می کردیم مانند آنچه که القاعده صفیح امت کرد اما این قرآن عزیز و کریم است سنت مطهر و محکم است و دین حق گراست کی تنو تحریف را نمیپذیرد تا مرگ می جنگیم و اگر کش ها از بین برود خانهها نابود شود ناموس ها پایمال گردد و جان در رود خونها جاری گردد یا اینکه با عزت دینمان سرور و گرامی زندگی میکنیم یا به خاطر آن با شرف میمیریم و ای سربازان دولت اسلامی بر شما پوشیده نیست که آمریکایی صلیبی و هم پیمانانش و همه امت های کافر در عقبش و مرتدین است امقبیلۀ خودتان در جلو شما جمع شدند و برای شما گرد آمدهاند و شما را تهدید می کنند و هر روز ادعا می کنند که نابودی دولت اسلامی نزدیک است و این حمله بدون شک کمر شکن است و شما را تهدید می کنند و می در حالی که پروردگارتان عز وجل فرموده است الیس الله بكاف عباده ویخوفونک بالذین من دونه ومن یضلل الله فما له من هاد؟ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلْ عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزِ ذِنْتِقَامِ آیا اللّه کفاید کننده بندگانش نیست و کافران تو را از آنها که غیر اویند می ترسانند و هرکی را اللّه گمرا گرداند برایش راهنمای نیست و هر کی را الله هدایت کند گمراه کننده ای ندارد مگر الله نیست که نیرومند و کیفرخواه است آری الله برای بندگانش کفایت کننده است و براستی که الله نیرومند و کیفرخواه است و نیرو همه از آنی الله است پس اگر به الله ایمان دارید و برای او عمل میکنید هیچ چیز جز الله هر چی باشد شما را نخواهد ترساند پس هر آن چی جز الله پست است هر آن چی جز الله قدرت ضعیف و سست و ناچیز است و از زمان اعلان دولت اسلامی توسط ما مرتدین و صلیبی ها ملحدان نابودی آن را در چند روز برای خود آرزو می کردند و جنگی عقبی جنگ را علیه آن انجام میدادند و حمله را با حمله دنبال می کنند و فرار را با بازگشت و دور میشوند و ناامید می شوند و الله هر دفعه آنان را رسوا می کند تهدیدشان تازه نیست و رسواییشان دور نیست. سپس روزها متفاوت و جنگ هم گاه گاه است و کسی که گمان می کند ما برای حفظ سرزمین یا سلطنت می جنگیم یا اینکه پیروزی با آن است بسیار گمراهیش دور است به عنوان اطاعت از الله و نزدیکی به او می جنگیم و تردید پیروزی این است که با عزت دین ما زندگی کنیم یا بر آن بمیریم فرقی نمی‌کند الله با تمکین بر ما مننت نهاد یا در صحرا و بیابان آوارا و تحت تعقیب باشیم نحن. فرقی نمی کند یکی از ما در زندانها اسیر باشد یا در باغش آسایش و خوشحال باشد نحن. فرقی نمی کند سالم بمانیم و غنیمت بگیریم یا زخمی نحن. یا کشته شویم پس پیروزی نزد ما تنها آن است که موحد زندگی کنیم و به طاغوت کافر شویم و لا و بر را محقق سازیم و دین را برپا کنیم ما پیروز هستیم در هر حال پیروز هستیم پس این حقیقت است والله شعار نیست راستگویان از سربازان دولت و فرماندهان با خونشان شان و هر کس در صف ما بر غیر این باشد از ما نیست و حتما باید از میان ما دور رانده یا خارج شود هرچند پس از مدتی باشد پس باید کسانی که زندگی دنیا را به آخرت سودا می کنند در راه الله بی جنگند و هر کس در راه الله بیجنگد و کشته یا پیروز شود به زودی پاداش بزرگی به او خواهیم داد و از عبدالله بن عمر رض له روایت است که انبر صل لله علیه وسلم هش گرو جنگجو یا گردانی نیست که بی جنگت و غنیمت گرفته و سالم بماند، مگر اینکه دو سیومی اجرشان را زود گرفتند. و هیچ گروه هیچ جنگجو یا جماعتی وجود ندارد که شکست خورده و زخمی شود مگر اینکه اجرشان تکمیل است پس ای سربازان دولت اسلامی مراجعه کنید و نیتتان را تازه نمایید و درونتان را اصلاح کنید و خوشحال باشید که والله شما یاری شده اید پس ما بر دلیل روشنی هستیم و با ما دروغ گفته نشده والله با ما دروغ گفته نشده و به آل سلول آنچی را ناخوش می‌دارند به زودی بیزنیلا مجدد دهید چون که آنان اولین شکست یس خردگان هستند، این الله. مسلم از نافع بن نوطبه رضی الله عنه روایت کرده گوید از پیامبر الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند با جنگ جزیره العرب می‌روید پس الله آن را فتح سپس با جنگ روم می‌روید پس الله آن را فتح می‌کند سپس با جنگ فارس می‌روید پس الله آن را فتح می‌کند سپس با جنگ دجال پس الله او را فتح می‌کند اگرچه فقها از قدیم در معنای جزیره العرب اختلاف دارند پس امروز واضی است و پیامبر ما صلی الله علیه و سلم راست گفته و دروغ نگفته است پس حمت کنید حمت کنید شما بجای امت با امت ها پیکار کنید اگر استقامت کنید رستگار شده اید و اگر سر باز زدید شکست خورده و زیان بینید و پیشروی شما صحنه های وجود دارد که ترسو برای آن بر خیزد وارداتی است که مصادر جز جنگو درگیری ندارد و شما به اذن الله اهلی آن هستید و این رمضان ماه جنگ و جهاد به شما آمد ماهی فتوحات پس آماده شده و بشتابید و هر کدام از شما حریص باشد که آن را در جنگ در راه الله بگذراند و آنچ را نزد الله اس بخواهد تا به اذن الله آن را ماهی شکنجه بر کافران در هر جایی قرار دهید و سربازان و یاوران خلافت را در اروپا و آمریکا به طور خاص یاد میکنیم پس ای بندگان الله ای موحدین اگر تواغید دروازه هجرت را بر روی شما بستند پس بر روی آنان دروازه جهاد را بگشایید و کارشان را بر آنون حسرت قرار دهید و کوچکترین کاری که در مرکز خانه آنان انجام می‌دهید برتر و نزد ما محبوبتر از بزرگترین کار نزد ماست و اثرگذارتر برای ما و پورزررتر بر آنان است اگر یکی از شما تمنا می کند و تمامی تلاشش را برای رسیدن به دولت اسلامی می کند پس بیتردید یکی از ما آرزو می کند که جای شما بود تا شب و روز نخوابد و با صلیب‌ها زر و بزند و آنان را ترسانده و دوچاری دو وحشت کند تا همسایه از همسایه‌اش بترسد پس اگر یکی از شما ناتوان شد نباید سنگی را سبک بشمارد که آن را به یک سلیبی در مرکز خانهش پرتاب کند و این عمل را کوچک نداند چرا که نتیجهش برای مجاهدین بزرگ است و اثرش بر کفار وخیم است و به ما رسیده که برخی از شما نمیتواند کاری کند به خاطر اینکه از رسیدن به اهداف نظامی عاجز است و از هدف قرار دادن آن چغری نظامی نامیده می شود احساس گناه می کند پس به خاطر اشتباه در جایز بودن و مشروعیت از آن می نماید پس بدون اینکه در مرکز خانه صلیبی های محارب عصمت برای خونها نیست و که به گناه نامیده میشوند وجود ندارد و اینجا برای ذکر و تفصیل ادله کافی نیست چرا که لیستش طولانی است و کمترین آن از باوی معامله به مثل است چرا که هواپیمای آنان نزد ما میانی مسلح و بیسلح و میانی زن و مرد فرقی نمیگذارند و بداند که هدف قرار دادن آنچ غیر نظامیان نامیده میشوند توسط شما نزد ما محبوبتر و مؤثرتر است چرا که برای آنان پرضررتر و دردآورتر و ممنوکن تر است پس ای موحدین در همه جا بشتابید به امیدی آنکه اجر بزرگ یا شهادت را در رمضان دریابید بدون توشه بسوی الله بشتابید مگر تقوا و عمل اخیریت و صبر در راه الله بر جهاد و هر توشهی در معرض نابودی است بجز تقوا و نیکی و هدایت یا الله ما را بر رمضان برسان و ما را بر اطاعت خیش کمک کن و ما را ثابت گردان بار اله ها ما جز از تو نمی ترسیم و جز اف و رضایت تو نمی خواهیم بار اله ها همه دنیا بر ما جمع شده و علیه ما گرد آمده اند و از ما عیب نگرفتند مگر اینکه گفتیم پروردگار ما الله است پس ما را از آنان پناه دی یا جبار تنها به تو پناه می آوریم و ما را یاری رسان یا حی یا قیوم تنها از تو کمک می خواهیم بار اله ها ما را بر آمریکا و همپیمانانش از یهود و صلیبی ها روافز و موحدان و جماعت ها و جبهات و گروه های مرتد و نصری ها و همپیمانانشان و همه دشمنانت یاری ده یا قیوم فبک وحدک اللهم انصرنا على أمريكا وحلفائها من اليهود والصليبيين والروافض والملحدين والجماعات والجبهات والفصائل المرتدين والنصيرية وحلفائهم وأعدائك أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين نضر الله موجوا لم تزل مثل السحاب من وريد القلب ترويا عندما من كل الهضاب نضر الله موجوا لم تزل مثل السحاب من وريد القلب ترويا عندما من كل الهضاب عندما من كل الهضاب في صليل الصار تحت رايات لاقا جاش في صدري لهيب واجل يوم الضراب في صليل للصوارم تحت رايات العقاب جاش في صدري لهيب واجل يوم الضراب واجل يوم الضراب نظر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب نظر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب عند من كل الهضاب في صليل للصار تحت رايات العقاب جلش في صدر لهيب واجل يوم الضراب في صليل للصوارم تحت رايات العقاب جاش في صدر لهيب واجن يوم الضراب واجن يوم الضراب نظر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عن من كل الهضاب نظر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما من كل الهضاب عندما من كل الهضاب أبشر يا تاريخ الفخر غرد يا طير الانشاد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 هشیار باش مفکر باش مدبر باش مبادا فریب را بخوری که مانند خر کتابها را به پشت انداختند مبادا فریب ملههایی را بخوری که مشاورین حکام تواقیتاند مبادا فریب را بخوری که زیر چتر تاووت به نام اسلامی مردم را به گمراهی دعوت می دهند مردم را به مذهب سیکولار دعوت میدهند مردم را به بهانه‌های های مختلف از جهاد منه می کنند پس فکر کن ای کسی که از این ملاحی دین فروش خطوه میگیری بپرسیشان را که آنها مجاهدند یا سیکولار پس عجله کن مبادا با مرگ جاهلیت بمیریم مبادا از این نعمت که خلافت از محروم شوید بیا در میدانهای گرم نبرد و کار زال بر علیه همه کفار و محتدیم بجنگ و دین الله را در سرزمین الله حاکم کن